فصل 23 هرچه مردم مردم امبروزا در گذشته درباره ماجراهای عشقی برادرم پرگویی میکردند، در برابر عشق پرشور او و ویولتا بر فراز درختان بالای سرشان واکنشی خموشانه و احترامآمیز داشتند انگار رازی در میان بود که به آنان مربوط نمیشد. البته از رفتار مارکیز خورده می‌گرفت اما خوردهگیریشان تنها به جنبه ظاهری محدود میشد از جمله اینکه او چنان دیوانوار وار ااصل میتاخت که هر لحظه ممکن بود بیفتد و گردنش بشکنند. میگفتند؟ خدا میداند با این عجله کجا می رود؟ در حالی که خوب میدانستند به دیدار کازیما میشهدابد. یا اینکه خوش داشت مبل و اساس گوناگونی را با خود به بالای درختان ببرند. زمانه به گونه شده بود که همه می پند آن رفتار مد تازه است که بزرگان باب کردند و از جمله کارهای عجیب و غریبی است که آنان همواره میکنند حالا دیگر همه می روند بالای درختها هم زن ها و هم مردها کار دیگری بلد نیستند بکنند. خلاص اینکه زمان ای فرا رسید که آزادیشی بیشتر میشد و دروی نیست گاه چندین روز میگذشت و باران بالای بلوط میدانگاهی دیده نمیشد همه میفهمیدند که ویولتا رفته است، برای سرکشی و املاکش که در گوش و کنار اروپا پراکنده بود به سفر میرفت و چند ماهی از او خبری نمیشد. همیشه هنگامی به سفر میرفت که رابطهشان به هم خورده بود و از و مدل پری داشت. زیرا نمی توانست با برداشت ویژه او از مفهوم عشق کنار بیاید. با این همه هیچگاه با آزردگی از هم جدا نمیشدند. پیش از آنکه یکدیگر را ترک کنند، با هم آشتی می کردند. ولی این شک همیشه برای کازیما به جا می ماند که رفتن ویولت تا از دلزدگی است زیرا او نمی تواند پیش خود نگهش دارد آیا این بدان معنی نبود که ویولت تا رفته رفته از او جدا می شد؟ آیا سفر این فرصت را به او نمیداد که بیشتر به رابطهشان بیاندیشد و دیگر بر نگردد؟ این فکر مایه نگرانی کازیما می شد میکوشید سرگرمی‌های گذشته را از سر بگیرد، به شکار و ماهیگیری برود دوباره به کارهای کشاورزی بپردازد و کتاب بخواند به میدانگاهی برود و لودگی کند چونان کند که انگار هرگز جز اینها کار دیگری نکرده بوده است به دینگونه میکوشید این سرسختی ویژه جوانان را حفظ کند که هرگز نمیخواهند بپذیرند که از دیگران تأثیر گرفته‌اند گرچه یعنی از نیرو و اعتماد به خویشتنی که عشق به او داده بود به خود می‌بالید اما می دید که دیگر به بسیاری چیزها علاقه ندارد. در می که بدون ویولتا زندگی برایش مزدهی ندارد و هرچه می کند نمی تواند به چیزی جز ویولتا بی اندیشد. هرچه بیشتر می به دلبستگی ها و خوشی های ساده و بی گذشته دست یابد دستیابد و حضور شورانگیز ویولتا را فراموش کند جای خالی او را بیشتر حس می کرد و آتش انتظارش افروخته تر شد. خلاصه اینکه که علا همه آنچه می گفت، عشقش به ویولتا درست همانگونه بود که ویولتا میخواست همواره حتی از دور پیروزی با او بود و کزیما با همه یه تکاپویی که می سرانجام خوشبختی خود را در او میدید مارکیز سرزده برمیگشت دوباره فصل تازی از عشق بر فراز درختان برپا می شد. همراه با عشق حسودی نیز می آمد. کجا رفتی؟ چه کردی؟ کوزیما میخواست همه چیز را بداند. میپرسید اما از شنیدن پاسخ بیم داشت. پاسخهای ویولتا همه گوش و کنایه بود و با هر کدام از آنها شک که بیشتر میشد. درست است که این کار را برای آزار او میکرد. اما همه آن کنایه ها میتوانست راست باشد. این بود که کوزیما گیج و درمانده میشد. گاهی حسودی خود را پنهان میکرد. گاهی دیگر آن را با همه ی تندی و سختیش آشکار می واکنش ویولتا همواره هموار گونه گون و قافل گیر کننده بود. گاهی چنین می‌نمود که بیشتر از هر زمانی به کزی مدل بسته است. گاهی دیگر چنان بود که او را از باز یافتن شور گذشته هادل سرد کرد. برای ما مردمان اون به که از پایک اروپا دور بودیم و از آنچه آنجا گفته می خبر نداشتیم روشن نبود که مارکیز در سفرهای خود به راستی چه اما در همان زمان ها من برای دومین بار به خاطر برخی کارها به پاریس رفتم. کارم به خرید و فروش لیمو مربوط می شود. در آن زمان بسیاری از بزرگ به داد و ستد رو آورده بودند و خود من از نخستین کسان بودم. شبی در یکی از معروفترین سالانهای پاریسی ویولتا را دیدم که خود را به گونه خیره کننده ای آراسته بود و لباس بسیار برازندهی به تن داشت. با این همه در جا او را شناختم و از دیدنش شگفت زده شدم چون به راستی نمیشد او را با هیچ زن دیگری اشتباه گرفت با بی به من سلام کرد اما در نخستین فرصت مرا به کناری کشید و پرسید از برادرتان خبری دارید زود به عمر راآور می گردید؟ این یادگاری را از من به او بدهید بیاکه منتظر پاسخ من بماند دستماری را از سییننش بیرون کشید و در دست من گذاشت و دوباره به خیلی ستایشگرانی پیوست که همباره دنبالش بودند. یکی از دوستان پاریسی هم زیر لب پرسید. مارکیز را می گفتم دورا دور. راست می ویولتا اینگامی که در امرازا بود با بزرگان محلی رفت آمد نداشت. گویی هم نشینی با کازیما او را نیز وحشی می‌کرد. دوستم گفت کمتر دیده شده که زنی اینقدر زیبا و اینقدر هوسباز باشد. میگویند با مردهای بیشماری رابطه دارد و هر روز با یکی سر می کند. به طوری که هیچ کدام از آنها نمیتواند خودش را بیش از دیگران به او نزدیک بداند. بعد از مدتی غیبش میزند و چند ماه از او خبری نمی شود می به صمعه ای می رود و برای جبران گناهانش معتکف می شود. به زحمت توانستم جلوی خندم را بگیرم. چه میدیدم در حالی که مارکیز بالای درختان امبرازا خوش میگذرانید گذرانید. ها میپ که او به توبه دیرنشین شده است. با این همه آن گفته ها مایه نگرانیم شد. اسم کردم قصه و اندوه بسیاری در کمین برادرم است. بران شدم که او را برای رویارویی با آنچه چه دیر یا زود به سرش می آمد آماده کنم. پس از بازگشت به امبروزا به سراغش رفتم. درباره سفرم و تازه هایی که در فرانسه دیده بودم بسیار پرسش او از من کرد. اما هیچ خبر تازه سیاسی یا ادبی نبود که بهتر و پیشتر از من نداند. در پایان گفتگو دستمال مارکیز ویولتا را از جیبم بیرون آوردم و گفتم در سالنی در پاریس خانامی را دیدم که تو را خوب میشناخت. این را داد که به تو یادگاری بدهم سبدی را که به نخی بسته بود به شتا پایین انداخت دستمال ابریشمی را به چهره برد انگار میخواست عطر آن را بو بکشد پس دیدیش چطور بود بگو ببینم چطور بود آهسته در جوابش گفتم بی اندازه زیبا و برازنده ولی میگویند که آن عطر را خیلی کسان دیگر هم بومی کنند دستمال را به سینه فشرد انگار میترسید آن را از دستش بقابند سپس با چهره برافروخته رو به من کرد و گفت مگر شمشیر همراه نداشتی تا زبانهایی را که این را میگفتند ببری گفتم که به این فکر نیفتاده بودم چند لحظی ساکت ماند. سپس شانه بالا انداخت و گفت دروغ است. تنها منم و جز من کسی نیست بیان که خداحافظی کند رفت و میان شاخه ها گم شد به هر آنچه او را به بیرون آمدن از دنیای خودش وامی داشت به همین گونه پشت میکرد از آن روز به بعد هموار ناشکی با و قمگین می نبود. از درختی به درختی می رفت و هیچ کاری نمی کرد صدایش را میشنیدم شنیدم که همراه با سهره ها می خواد. اما آوازش هرچه قمگین و عصبی تر می شد.